این داستان ملکه زنبورها روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون پادشاهی بود که دو پسر داشت. پسرانش که از هوش و ذکاوت بیپهره نبودند، راهی سفری شدند. در حین سفر در اثر بیبند و باری پولهای خودشون از دست دادند. حیران و سرگردان شدند و دیگه به خونشون بر نگشتن. دو شاه ساده برادر کوچکتری داشتند که آروم و ساده بود. اون دو تا اوننا ساده له صدا میکردن و میگفتن چون خیلی ساده است هرگز قادر نیست کاری تو این دنیا از پیش ببره. دو تا برادر همیشه اونا مسخره میکردن و دست مینداختن برادر سوم بعد از مدتی به اون دوتا ملحق شد و ستایی به سفر ادامه دادن. در راه به تپه کوچکی رسیدند که لانه مورچه ها بود. دو تا برادر بزرگتر میخواستن لونه مرچه ها رو خراب کنن تا فرار کردن و در در شدن مرچه ها رو تماشا کنن. برادر کوچکتر گفت نه مرچه ها رو به حال خودشون بذارین اجازه نمیدم مزاحم مورچه ها بشین بعد به راهشون ادامه دادن تا به یه دریاچه رسیدن که اردک زیادی توی اون شنام می دو تا برادر بزرگتر زمزمه کردند که چطور میتونن اون دو تا اردک ها رو وردارن و بکشنشون و کبابشون کنن. برادر کوچکتر دوباره مانع اونها شد و گفت من اجازه نمیدم اونها رو بکشین. کاری به کارشون نداشته باشین. اونا اردک ها رو به حال خودشون گذاشتن و به راهشون ادامه دادن. رفتن و رفتن تا به لونه زنبوری که بالای درختی بود رسیدن. لونه زنبور چنان از اصل لبریز بود که از تنه درختی که لونه روی اون بود اصل به پایین می چکید. دو تا برادر خواستن در پای درخت آتیش بپا کنن تا زنبورا خفه بشن یا فرار کنن و اونا بتونن از اصل اونها بخورن. برادر کوچکتر باز مانع کار اونها شد و گفت زنبورای بیچاره رو به حال خودشون رها کنین. سوختن اونا رو نمیتونم تحمل کنم برادر به حرف ساده گوش کردن و از آتیش درست کردن صرف نظر کردن سه تا برادر در ادامه سفرشون به قصری رسیدن که استبل اون پر از اسبای سنگی بود اونا به تک تک اتاقهای قصر سر زدن. اما کسی اونجا ندیدن تا اینکه دست آخر با دری روبرو شدن که سه تا قفل داشت وسط در شیشهای بود که از اون میشد درون اتاق رو دید. اونا مرد كهنسالی رو دیدن كه در اتاق پشت میزی نشسته. برادرها صداش کردند. بار اول و دوم نشنید. ولی بار سوم مرد كهنسال صدای اونها رو شنید و از جا بلند شد و اومد قفل در درو باز کرد. بدون اینکه چیزی بگه، سه تا برادر رو به طرف اتاقی برد. که توی اون غذاهای گوناگون چیده شده بود. بعد از اینکه خوردن و نوشیدنشون به پایان رسید، مرد کههن سال اونا رو برای خوابیدن به اتاق خوابی هدایت کرد. صبح روز بعد مرد کههن سال موسفید نزد برادر بزرگتر اومد و با اشاره دست بهش فهمند که به دنبالش بره. برادر بزرگتر رو برد و لوح سنگی رو نشونش داد. روی لوح سه تا کار سخت حک شده بود که با انجام اونها تلسم قصر میشکست. کار این بود که مرواریت شاهزاده خانم خانمو که تعدادشون به هزار دانه میرسید و زیر خزه های جنگل پراکنده شده بود جمع کنه. چنانچه تا غروب آفتاب این دونه ها از هزار دونه کمتر تر پیدا میشد اون که دنبال مرواریت ها میگشت به سنگ تبدیل میشه. برادر بزرگتر را افتاد و به جنگل رفت و شروع کرد به جمع کردن مرباریدا. ولی وقتی که آفتاب غروب کرد فقط 100 تا دونه جمع کرده بود. نوشته روی لوح تحقق یافت و برادر بزرگتر تبدیل به سنگ شد. صبح روز بعد برادر وسطی دنبال این کار رفت. ولی اونم تا غروب فقط تونست 200 تا دونه مرباری جمع کنه. بدون درنگ به سرنوشت برادرش دوچار شد و به سنگ تبدیل شد. دیگه نوبت برادر ساده بود که زیر خزه ها رو بگرده و مرواریت ها رو جمع کنه. کمی که از شروع کار گذشت متوجه شد که کار داره به سختی پیش میره. بالاخره معیوس شد و روی یه دونه سنگ نشست و از ناراحتی به گریه افتاد. همینطور که گریه اوزاری میکرد ناگهان دید که شاه مرچه ها که زمان جونش رو نجات داده بود جلوش سبز شد. شاه مرچه ها پنج هزار تا مرچه رو به همراه خودش اوورده بود که همگی شروع کردند به جمع دونه‌های دونه های مربارید. چندان نگذشت که همه مرواریدا رو جمع کردند و یه جا روی هم تلمبار کردند. اونا میخواستن قدردانی خودشون نشون بدن به همین دلیل بدون اینکه منتظر سپاسگزاری اون جوون باشن راه افتادن و رفتن برادر لح از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید وقتی برادر کوچکتر به قصر برگشت دید که کار دشوارتری در انتظارشه این بار باید کلید اتاق خواب شاهزاده خانم از دریاچه در می آورد صاد له به کنار دریاچه رفت و مونده بود که چطور میتونه کلیدی رو که ته دریاچه از پیدا کنه در همین موقع اردکایی که نجاتشون داده بود شناکنون به طرفش اومدند تا بهش کمک کنن بدون درنگ اردکا دست به کار شدن و کلیدو از ته دریاچه بیرون کشیدن کار سومی از همه سختتر بود برادر سومی حالا باید وارد اتاق خواب شاهزده می میشد و بین سه خواهر خفته کوچکترین اونها رو شناسایی می کرد. سه خواهر شبیه هم بودن و با همدیگه مونه می زدن. تنها چیزی که میتونست تونست ای باشه این بود که خواهر بزرگتر قبل از خواب نیشکر خورده بود. خواهر وسطی شربت و خواهر کوچکتر یه قاشق عسل. وقتی برادر سااد لح به این فکر می کرد که چطور می تونه جوانترین دختر را تشخیص بده؟ ناگهان ملکه زنبورها که اون مانع سوزاندنشون شده بود از راه رسید. اون روی لب دو تا خواهر نشست و برخاست، ولی روی آخری نشست و مکس کرد اون همون دختری بود که اصل خورده بود به این ترتیب سااد لح کوچکترین خواهر رو شناسایی کرد. بیدرنگ تلسم قصر شکسته شد. خفته ها از خواب بیدار شدن و اونایی که به سنگ تبدیل شده بودند به شکل اولشون برگشتند. برادر سادلو با کوچکترین شاهزاده خانم عروسی کرد و بعد از مرگ پادشاه به سلطنت رسید. بعد دو تا برادراشم با دو تا خواهر دیگه ازدواج کردند و از این داستان به این نتیجه می‌رسیم که